کستردگرائی چیست؟ انواع کستردگرائی کدام ها هست؟ چیگونه کستردگرائی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟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 شنوندوان گرامی در صفحات اجتماعی معصیم طالات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایسو، سازمانشت مای صفحید و راژیان نانی راهبرشون سلام و درود وقت شما بخیر و برنامه کسرتگرایی و افغانستان پوش آمدید در این برنامه با حضور کاشناسان و نخبگان علمی افغانستان کسرتگرایی را از زوایا و مناظر مختلف و بحث و بررسی میگیریم چشمنداز این برنامه بررسی کارایی را برای گذار از منازعات و حل چالشهای اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن به یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفع در پرتو اندیشه های کثرتگرایی دست یابیم رابطه کثرتگرایی با رشد و توسعه اقتصادی افغانستان چگونه است با نگاه کثرتگرایانه و پلورالیستی چگونه می‌توان می زمینه ای مشارکت اقتصادی موثر زنان را در افغانستان فراهم کرد این سالات را از آدرس محسل مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان هلسو، رادیو آنلاین راهب و سازمان اجتماعی صفحه با کارشناس علمی برنامه بکنکاش میگیریم. مهمان من در این بحث محترم استاد جانداد جهانی، استاد پانتون پکتیا و کارشناسی ارشد اقتصادی است. این استاد جهانی گیرامی برنامه بر برنامه کسلتگارایی و افغانستان خوش آمدهد. سلام و دروز بر شما و بر همه بینندگان خیلی خوشحالستم استم که بر شما هستم. شکل جهانی ممنون از ایک وقت گذاشتین جهانی بحث از متاهیم آغاز می کنیم. به نظر شما کلورالیزم چی هست و چی گناه به وجود آمده است؟ کلورالیزم یا به زبان فارسی به نام کسرتگرائی یا تکثیرگرائی هم از یاد میشه، یکی دایی خیلی کوهان است. یعنی ما در یونانی باستان با چنین مقاهمی از یونان باستان آن از خلصفه یونانی با چنین مقاهمی ارشنا شده ایم. و این متشکل از دو بخش است. یکیشه پلوره است که با معنای جمع است و دیگم این که معمول شما در همه ایدئولوژی‌ها ها و مکتب فکری داریم. لیوازا اگر مثلا بشکل تحت اللبزی ما شد، یعنی یک دیدگاه جمعی است یا یک دیدگاه جمعی تر با است. هست، نظر به یکی مثلا یک دیدگاه واحد باشد یا یک ریوانت واحد باشد. درمیان انواع پلورالیزم یا تعدد که در پلورالیزم کثرتگره وجود داره کثرتگره اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در نگاه شما کثرتگره اقتصادی چی است؟ و چی مانو کثرتگره اقتصادی؟ یا پلورالیزم اقتصادی و چی ماناست؟ بیشتر اگر ما شما در مورد پلورالیزم صحبت میکنیم یا ببینیم یا ارجاع شنیده باشیم بیشتر یک مسئله سیاسی است یعنی کستراتگرائی یا فلورالیزم از بینوان یک فلسفه سیاسی مطرح شده است اولی چون مسائلی چنین مفاهم مثل مکاتب فکری و ایدالوجی ها معمولا شامل بخشای دیگر زندگی همی شادی امسائل دیگر اجتماعی همی شادی آزد ای موضوع فلورالزم ما در بقشای مختلف داریم یعنی در معرفتهای مختلف مطرخ است ما در سیاست داریم همچنان در مذهب داریم فلورالزم مذهبی همچنان در فرحنگ داریم فلورالزم فرحنگی و در علوم داریم یعنی در مجموع علم با مصابه یک سیستم معرفتی و در اقتصاد ماخمهیره شما و ام شما از دو دیگه‌ها میتاریم با در مورد کلورالیسم صحبت کنیم یکی اقتصاد من حس یک علم این اقتصاد از ساینس اکونومیکس از ساینس اینجا بیشتر مثلا مفهوم فلورالیستیک اکونومیکس مطرح میشه یا علمی اقتصادی فلورالیستی و هم اما شما از طرفی پلسفه سیاسی، سیستم سیاسی با اقتصادی میرسیم رسیم یا از پلسفه سیاسی پلورالیستی با مسائل اقتصادی می رسیم و بالاخره در مورد سیاست ها و پلیتی های اقتصادی و اقتصاد من حیث یک چیزی عملی در جامعه موسوم می یک دیدگاهی پلورالیستی در موردی ها باشیم خوب وقتی ما شما از طرف علم میایین اگر ما شما تاریخچه اقتصادی فلورال فلورالیستیک اکونومیکس ببینیم، اونجا بیشتر مثلا از سال 1990 به بعد تا مثلا سال 2015 چند جریان بودن چند جنبش های بودن در دانشگاه های مختلف در که به شکل مطرح شده مثلا اعتراض بودن به یک نحوی چون ما شما همیشه یک ایده های اقتصادی همیشه در اقتصاد جهان بارز بودن مثلا ما سالای نوزده هستی نوزده کل تا آن نوزده اقتصاد کنزی دارشتم یعنی بیشتر نظریت اقتصاد کنزی در راسی سياسات های افتساد دی بودن بعدان موشتما بشتغبا کلاسیک های نوین می و بالاخره مسائل از اقتصاد اوترشی مطرح می شا کی و... ورام دی دي... آسان سول اپ اکنامکس ولی بعدان بعدان آم چون وقتی ما و شما بحران های مثل بحران دوزارو تا دوزار نوی میلادی داشتیم، بحران مالی جهانی بعد از اون متوجه می شویم یا بعضی دانشگاهیان متوجه می شویم و میگن که بلا خدم یک افروچه که ما عمید شدر دست گرفتیم برای حل مشکلات اقتصادی یا برای پاسوبویی برای بحران های اقتصادی همیشه پاسخگو با نیست بالاخره ما با و شما به یک میتود جامع‌تر نیاز داریم ما و شما به مدل‌های جامع‌تر نیاز داریم ما و شما باید ایده های و تیوری های مختلف اقتصادی را در نظر بگیریم تا با مشکلات متنوع جامعه به شکل بهتر پاسخ بدیم این از دیدگاه علمی است ولی از دیدگاه سیاست اگر بیایم از دیدگاه سيا... پلسپه سیاسی بلاخرت تا پلورالزم اقتصادی چون در پلسپه سیاسی پلورالزم ما شما بر تنوع تاکید داریم بر آم آم بر چنیدن صدای اقلیت ها و طبقات مختلف تاکید داریم بر جامعه باز تاکید داریم لحاظ وقتی با اقتصادم می رسیم میگم اقتصادم باید باز باشه یعنی بیشتر متاثر اقتصادی متاثر از کی ای ایدئولوژی از, از یک پیکر از از یک نهاد نباشن یعنی حتی اقتصادی ما باید نباید تماما امم ام پرایوت ام سیکتور باشه همچنان چنان دولت هم دخل باشه این جوها بالاخره گروپ های متعدد و مختلف بالاخره وقتی این همه در اقتصاد این همه نیحات ها و طبقات در اقتصاد و مسائل اقتصادی دخل باشند احتمال این که صباتشان بیشتر باشند نظر به با دیگه الالترنتب ها یا دیگه هایی که ما داریم ای بهتر بیتر است بهتر عمل میکنن با با صباتتر است و بلاخره بناتی مردمی بیشتر است یعنی ما سومایه کسی را ازی اگزکلود نمیکنیم این ای محروم نمیکنیم هر طبقه جامعه هر سکتور و بلاخره هر نهاد خمیلی همین اقتصاد و ام پالیسای اقتصادی است تشکر جانیس در میان تیوری های متعدد و متقدم در مورد رشد اقتصادی وجود داشتن در جوامع مختلف به نظر شما اصول اساسی رشد و توسعه اقتصادی از دید پلورالیسم چی است خب مثل قبلا نمیشاره فلورالیسم بیشتر بر مشارکت تاکید داره در مشارکتی همگانی و شامل شدن همه انما به معنی تمامی نهادها است تمامی طبقات است هاست جنسیت‌ها و بلاخیره تمامی مذهب و فرهنگو یعنی تاکیدشان بر شمولیت همه است هیچ کس دولت محروم نشه خب این دیدگاه در ذات خود یک دیگاه باز است، یک مبنی بر تسامح و هم دیگر است و این اپروچ به نوع خود تیورهای که اعظمی اپروچ و اعظمی دیدگاه متاسر شدند بیشتر ایده اقتصادی باز است و در اقتصادی باز بالاخره تیورها و مدلهای متفاوتی هستند که مقدر می شوند و ما سوال شما رو نشد نشدم اگر بخش پایانیش دوباره تکرار کنید در میان ام تیوری های متعددی که وجود داره برای رشد اقتصادی در جامعه شما که تیوری کینز مطرح کردین یا بعد اقتصاد خوش‌گیریه دنیار فلسفه سیاسی که بدون شک پلورالیسم با تعدد و کثرت و تنوع و تاکید داره اصلی اساسیش به علاوه بر مشارکت همگانی چی است؟ آسی اساسی و اصول اصاسیشون که ما باید در یک جامعه مثل افغانستان در نظر بگیریم برای روش توصیح اقتصادی افغانستان که یک جامعه متنوع هست با اقوام متعدد و با فرهنگ های متعدد خب به نظر ما در کنار مشارکت همگانی اصول اساسی در مورد رفع تبییز در مورد مسائل مالکیت مثلا مالکیت باید منحصر به با دولت یا منحصر به گروه،, گروه مشخص نباشد همچنان طبول کردن ایده جدید مثلا یکی از تاکید های یا مسایلی که مدافعان فلورالیزم مطرح می کنند این است که ای وقتی ما ایده های هر کس داشته باشیم و وقتی هر کس از آدانا بیتواند ایده خودا مطرح کنند این بیشتر به خلاقیت و نوآوری منجر می شود و نوآوری و خلاقت یک محرک اساسی از توتیه افصادی پین داشته می شود این موضوعات کوچک مثل مشارکت هم اگر نیم مثل رفت تریز مثل از از این کاروبار رو بله خیره محدودتر یعنی محدودتری نی کمتر باشد یا خدار کننه باشد بهتر است و همچنان شنیدن صدای هرکس و بلاخره خیره داشتنی ادعاهای متنویی با نوآوری و بله پیشفت اقتصادی منجر می شود پس به نظر شما رابطه بین پوللیزم و رشد اقتصادی چیگونه است؟ آیا رابطه بین پولورلیزم و رشد اقتصادی در جامعه متنوع مثل افغانستان دو جانبه هست؟ یک جانبه هست یا این رابطه موثر و همدیگر رااببطه من کیست؟ خیلی مسیره خوبی می‌ترشد. وقتی ماوش ما شما از روش اقتصادی صحبت می‌کنیم، یک روش اقتصادی یک توصیه اقتصادی به نظر منظور شما هم توصیه اقتصادی است. در توصیه اقتصادی در مجموع وقتی ماوش ما شما از توصیه گفت می‌زنیم، یک مفهومی خیلی یک مفهومی وسیع است و میشه مثلا برای اینا می‌یارهای جدیدتری تاریب کرد. تار وقتی ماوش ما شما از Human Index من دنبال منحصی در اونا خودشان تنوع، مشارکت و برابری یک اصل است. یعنی اگر در منیجری، توصیه اقتصادی، برابری را یک شخص در نظر بگیریم یا در شخص منحصی یک در نظر بگیریم، لذا اگر توسطی تدویق کردن پلورالیسم اقتصادی یا ددگاه پلورالیستی و سیاست های پلورالیستی ما و شما حریقل برابری را بدست بیاریم اگر روش اقتصادین با ما اندازه بیشتر نباشه خودشوان اصاب میشه یعنی همون برابری خودشوان اصاب میشه همی مشارکت خودشوان اصاب میشه به تکل اگر ما و شما فقط امی اجزائی یا یعنی ناصر اساسی پلورالیستی را بدست دست بیاریم ی خودشان یک چیزی یک چیزی یک دستاوردی در راستای توسعه اقتصادی است لذا یک رابطه‌ای دو طرفه است و همچنان وقتی ما شما این را داشته باشیم مثلا خلق قطاع و مداخله کمتری دولت و بی مشارکت همگانی و شنیدن صدای هر کس لذا اینا بنوبه خود باروش اقتصادی کومک میکنه نو باروش اقتصادی ام اقتصادی خودشان یک پکتوری اساسی توسعه اقتصادی است که رشد اقتصادی خودشان هم یک موضوع مهمی اقتصادی سیا یک یا یک دستور بزرگ اقتصادی شمرده میشه جنوب جنب بگریم سپری موضوع پولرالیسم یا کثرت را در کانٹکست یا زمینه اینس در افغانستان در نظر بگیریم چیونه از باروی کردن پولرستی پلور، یا کاستاتگرایی آن؟ زمینه تاوسیتی سادی را در کشورهای جانسیومی مثل افغانستان فراهم کرده می‌تونم. در مورد افغانستان ما به نظر ما شاید, شاید بیشتر بیش از آرکیشور مانی است با تازه ما با پلورالیزم داشته باشیم و. به نظر ما این ایده در افغانستان نوزم جدی دسته یعنی این به شکلی کوپتار شده شده مردم بهتر نفهمیده زمین موضوعی فلورالیزم آم اگر در اگر ما شما تاریخ معاصر جهانی جهان غربی را در نظر بگیریم چرا چرا مثلا بعد از قرن ها در یونانی باستان مطرح می ولی دوست صد سال اخیر یا سی صد سال اخیر در اروپا بیشتر سریان تمرکز میشد چرا؟ به خاطر اینکه این یگانه رای ای یی گانه رای یا ممانعات از اس خوشنط است یعنی ما و شما میتونیم با استفاده از دیدگاهی فلورالیستی با مفهوم فلورالیستی یا باور به فلورالیستی که مردم از همه افشار و همه فرهنگ و دیدگاه های سیاسی و اقتصادی می‌دانند با هم در یک هارمونی زندگی کنن و به لحاظ منفای کلی جامعه بالاتر ببرن در افغانستان ما شما ما بیشتر کمپلکت داریم ما شما بیشتر بیش از خیلی شورا اخشوند داریم خیل بیش از خیلی شورا ما شما اینجا دیدگاه های خیلی افراطی و اکسترمیستی داریم افراطی تنها دیگاه این چی نیست مثلا افراتیت مذهبی در افغانستان اگر ما شما تاریخ بخوانیم هر کسی که به قدرت اماده سر دیگرها را هم نکده دیگرها را شامل نکده سر دیگرها هر بدی که از دوتشان می آمدن روا داشته است اگر ما شما پرشه چپی ها را در افغانستان ببینیم یعنی بهتر و خوبتر از امیر مثلی مثل مجاهدین و بلاخره این هایی که امروز حاکمستن نبودن یعنی اونام با ما اندازه متساموه کمتری داشتن و تراهم کمتری با مردم و جریان های سیاسی مخالف خود داشتن در کشورای مثل افغانستان ما و شما از سیاسات از بود سیاسی اگر پلورالیزم تدبیق میکنیم یا جای میتیم به دلگاه پلورالیستی بیشتر کمک میکنن. یعنی وقتی ما از ما یک نظام در باشیم که اونا با پلورالیزم متفقید باشند بلاخره سیاست های اختصاری ما شما پلورالیستی خواد بودند مثلا بری خانوما خانوم جای خواد بودن، بری مینوریتی های و نجادی جای خواد بودن و وقتی ام مثلا این ها محروم نشان مثلا ما طبقات مختلفی ارهنگی و جنسیتی و مذهبی را محروم نکنیم معاونا را شاملی پالیت های اشتماعی و اقتصادی و سیاسی کنیم این خود با خودشان برای بر بر بر رونق اقتصادی برای صحبات سیاسی کشور مهم است ازامی خاطر دمیانه انواع مشارکت شعروندان در افغانستان در نظر بگیریم مشارکت اقتصادی شعروندان افغانستان از نظر شما چیگونه بوده با توجه به یا پولورالیزم اقتصادی به نظر ما اقتصادی افغانستان این که همیشه شکننده است به کهلت احساسیشان هم عدم مشارکتی یا مثلا افراد دیاکتو ولی از ازو مثلا نهادها و بالاخره نجاتها و طبقات طبقات مختلف مشارکتی کمتری داشتن یعنی در افغانستان در افغانستان مثلا در 20 سال گذشته اگر ما شما ببینیم البته مسئله تنا از 20 سنه از خیلی گذاشته، مثلا از 100 سال گذاشته اگر ببینیم یک مسئله که در افغانستان بود همیشه یک تشرخ خیلی کوچک سهمی خیلی بیشتری در اقتصاد داشتند در اقتصاد افغانستان مثلا بازرگانان اگر در نظر بگیریم خیلی کم ما شومه داشتیم ولی خیلی حجم بزرگی از اقتصاد در دست اونها بودند و همچنان اگر مثلا زنانا در نظر بگیریم با این که مثلا پنجاب سری از جامعه را تشکیل میتن ولی نقش اقتصادیشان یعنی مشارکت اقتصادیشان در های اقتصادی خیلی کمتر بود همچنان اگر ما و شما در سالین گزشته یعنی تنانا در بیس سال گزشته و در سال سال گذشته اگر ببینیم، حکومت ها هم همیشه حکومت ها و نحات ها رفتار اقتصادیشان فلورالستینا بود. در 20 سالی گذشته، اگر با 50 سالی دیگر مقایسه کنیم، یه ماده سرودایی داشتیم. یعنی مثلا تکتوری خصوصی خیلی خوب روش کرد، مشترکاتی خیلی خوبی داشتیم. اتشارکتای افغانی بودن که بالاخره ملکیشنل شدند و مشترکتای ملکیشنل در افغانستان سرمایه گذاری کردند. مشارکت زنان بودن و از اقشار مستقلیت ماشما، از اقسامی مستقلیت ماشما در فردهای اقتصادی. افرادی بیشتری نسور دوگذشتو های داشتیم ولی بازم اگر ببینیم یک طبقه یا یک متایلی خیلی کوچکی از مردم در ترخب و در بخش استیکوری خدماتی شامل بودن بیشتر تمرکز افغانستان یا اقتصادشان خیلی یک مبنی بر کشاورزی و تکیه بنا اقتصاد و پنچ صد مازونشان مسعود اونجا بودن یعنی بیشتر تمرکز مردمی افغانستان یک سکتوری سری یک سکتور بوده ما مثلا بالاتر از این در یک سکتور داشتیم در اگر مثلا معقالیت اقتصادی بیشتری پالستی را می خواهییم اخططبقات بیشتر, بیشتر ناد های بیشتر و مردمی بیشتر در سکتور های مختلف و متنوی فیت داشته باشنشک که ث با صوبتر میش ججانیس و اگرژ پلورالیزم یا کسرتگرایی را به امان یک چارچوب علمی و مبنایی برای مشارکت همه شهروندان بخصوص زنان در عرصه سکتور اقتصادی در نظر بگیریم پلورالیزم چیگونه زمینه مشارکت بهتر و بیشتر زنان را در سکتور اقتصاد فراهم کرده میتونه؟ خب اگر ما پرنسپ های را در سطح اقتصادی یا در مجموع در سیاست یک در نظر بگیریم یک یک اصل اساسی لیبرالیسم که مشارکت است بیشترین توجه می شود و وقتی ما با طبقات از و طبقات مختلف میزنیم بالاخره زنان یک قشدی از جامعه است و برای مشارکتشان باید موانی تشخیص شود موانی مشارکت زنان در مسائل اقتصادی و قلیفه اقتصادی چی خب برای برداشتنی چنین موانی میشه مثلا اصول و قوانینی در نظر گرفته شود در برسال گذاشته به این مسئله تایکندازه توجه شده بود مثلا در بری باز ادارات یک تارگیت می میشود تا سهمی مشاركت برای مشارکت زنان یک سهم ویژه در نظر بگیرند مثلا برای دانشگاه ها در بازی پانزایی یک اندازه مشخصی برای دختران و زنان داشتیم که باید اونا به اندازه زنان جذب شوان و مثلا در بازی ادارات مشخص بود که 20 یا سی بسر باید برای خانوم باشند و در بازی, در بازی بخشا ها مثلا قوانینی بودن اه اه اه و اوناتای حد کرامت بودن یک موضوع یعنی قوانین است و قانون گذاری و مقرراتی برای مشارکتشان تلاش شود و دوم موانع موانع دیگه مثلا موانع اجتماعی موانع اقتصادی و مسائل دیگه باید تشخیص داده شود و برایشان کار شود مثلا تنها با قانون و قانونگذاری نمیشه وقتی شما ام برای تحصیل و تعلیم و تحصیل زنان و دختران زمینه زمینه نباشند و فرصت نباشن و آنها اونجا اونجایی ماین چطور بتوانیم اونا را در اداره داشته باشیم چطور بتوانیم آنها را در فایده های اقتصادی داشته باشیم؟ لحاظ برای یک استراتژی جامعی نیاز است و اول که مشکلات کشوری انوز خیلی بیشتر است و ما حتی برای مشارکتی داوطلبانه طلبانه ای خانم ما ام ام محدودیت هایی داریم یعنی اگر تا حمایت هم نشود در وزیت پیلی و ازاد گذاشته شود ما مشارکت بیشتری خواهد داشتیم ولی متاسفانه کنید. تشکر شکل جنویسا جهانی اگر نگاه به فرهنگ و تنوع فرهنگی افغانستان داشته باشیم افغانستان یک جامعه است با تنوع فرهنگی چیونه از تنبوی فرهنگی در راستای مشارکت بیشتر اقتصادی زنان استفاده کنیم تا چالش های فرارای مشارکت اقتصادی زنان از دیدگاه فرهنگ های مختلف در افرانسان وجود دارد این چالش ها برداشته شوند و ما به ایک حل اساسی دست بیدادم به نظر ما قبل از کی ما شما در موردی صحبت کنیم که چطور اما تنوی پرهنگی باید بیشتر زنان در پلیت های افتادشان ام می کنیم اما ایده پلورالزم را در مسائل تنوی پرهنگی به کار ببریم افغانستان در این برخه زمانی اگر مشخصا اما دو سی سالی گزرشته و بلاخله دو سالی بعدی که ما شما داریم از یک وضعیت خیلی برانی نا همزیستی به نظر ما بخوردار است روزها هم در گرپزیری و تساموه با یک حد خیلی پاینی رسیدند مثلا ما در سوشال میدیا و بالاخره حتی در میدیا و میدان داریم که یک مشکلات بین با باید باید با پرهنگ و با حمدستی با شکلی که باید می بود با شکلی که تلورنت و یکدیگر فذیریم باید می بود نیست مثلا ما شما در مقابله یکدیگر به اصطلاح همدیگر فذیری رواداری کمتری داریم و میشه فهمیدید که لورالستی نه تنها در سیاست های عمومی دولتی بلکه در مسائل اجتماعی در نظر بگیرید از اقوام خودی موانا متوجه می مسائلی از امید اید فلورالیستی و امید دیگه فلورالیستی باشیم و باید دیگه رواداری داشته باشیم باید دیگه با شکلی که با شکل که اونها هستن دیدگاه های مختلف را بپذاریم و مثلا باورهای مختلف و نیجادها و فرهنگا و افرم مختلف را بپذاریم و وقتی یک دیگه را پذیروفتیم وقتی بدیدگاه های مختلف یک دیگه احترام گذاشتیم به شکل بیتر می شود که با هم کار کنیم و با هم تاریخ یک دیگه می توانیم با سطوی پلاتر از زرورشت اقتصادی و توسعه اقتصادی برسیم و بعدا وقتی یکدیگر دیگه را به نظر ما ای به یک نخوی می شود که بر یک دیگه اولگو باشیم و باشی مشارکتی زنان بهتر بي و بیشتر شود در 20 سال گذاشته یا در دو سالی گذاشته اگر بینیم بعضی از مناطب خوبتر بودن مثلا در مشارکت زنان اگر ببینیم مثلا شارها همه اشارها از مناطب اطراف خوبتر بودن در مناطقی پشتون نشینان در ببینیم مناطقی مشرکی افغانستان در مورد اطلاع و تاسیل و کار زنان بازتر از مناطقی جنوبی بودن، همچنان مناطقی مرکزی افغانستان یا در کابل اگر مشخص تر ببینیم شهری کابل، بخش غربی کابل بهتر از بخش شرقی و جنوبی و بخش ای دیگری کابل بودن، کنابر دیگرایک نمونا و نمونه نمو بودن یعنی اولوی بودن و همین مثلا فلورالزمی، همین تنوی پرهنگی و نجادی و بلاخره می شود که ما شما بری دیگرای مصفاق بیاریم بری دیگرهای و بلاخره زمینه بری مشارکتی بسترده تر و بیشتر زنان در قالیتهای اقتصادی و جمعیه مصفاید جانیسه بگر به لحاظ سیاستگزاره های کلان نگاهی داشته باشیم و با پولورالیزم پولورالیزم چی تأثیری در سیاستگزاره های کلان اقتصادی در کشور مانند افغانستان لشنن میتنم؟ مثلا در لبال های بسای ما <ماثنس> شاید <arribe> این مسئله مطرح شد که از دو از دو سطحی یعنی هم از سطح مردمی و داخلی یک کشور یعنی مثلا از از طرف مردم و هم از طرف نهادهای قانونگذار مثل دولت می شود که مفلوئرالیسم یا یک جامعه فلورالیستی نزدیک شویم یکی مردم یک دیگر را بپذیرند یکی مردم با کلورالیزم و تنوع احترام بگذارند و بلاخره در مقابل یک دیگر واداری داشته باشند و دوم مثل که شما اشاره کردین سیست های کلان در سطح یک دولت است که میشه در اقتصاد باشد در بخشای دیگر باشد بلاخره ما شما را به توصیح اقتصادی برساند خب بذری ما مسائلی که قبلا مطرح شده اگر بر اینا اگر بر اینا بیشتر توجه شود مشارکت و بالاخره یک دیگر قزری و ارتقای تبریز و بالاخره فرصت برای نیات های مختلف و گروه های مختلف و طبقات مختلف و چنین اگر در سیاست های کلان چنین مسائلی در نظر گریبته شوا ما شما اینا شما را به یک وضعیتی بیتری از خواستی اقتصادی رسانی در می جناب جهانیست با استفاده از اصول اولورالیزم به که کمتر برخوردار از رفاه است در جامعه ایمیست افغانستان و کمتر دسترسی بر رفاه داره. هرچند که اکثریت جامعه افغانستان با به آمارهای که از طرف سازمان های مثل سازمان ملال متحد راه میشه. زیر خط خق است که اقلیت کمی در رفاه زندگی میکنه. ما چی گونه ای اکثریت که کمتر از رفاه برپردار هسته با استفاده از است و سطح های و بخصوص پلورالیزم اقتصادی انها را به رفای بیشتر بدیم و زمینه رفایشان رو بیشتر فراهم کنیم چگونه این کار باید کرد؟ به نظر ما پلورالیزم نه برای یک ایده مشخصی که اونا محروب تر است است بلکه برای بلک بل تمام جامعه بهتر است وقتی ما شما سیاست های و بالاخره سیاست های بعض اقتصادی را زیر دست بگیریم برای همه اختصاد هم بهتر است اگر ما شما تیریهایی در نوینی اقتصاد و اقتصادی توصیه هم ما تاکید بر آزادی و سیاستهای اقتصادی باز و بالاخره مشارکتی کمتری دولتی و رگولیشن کمتری دولتی تاکید دا دارند وقتی ما ما و شما این ده ها و این سیاست ها را در نظر بگیریم این سیاست خاص و خاصتهای pluralیزم چنین است بالاخره اگر ما شما سیاست های pluralیزم و مداخلات کمتر دولتی را در نظر بگیریم این بنافی هما است و اقلیت هایی که محرومن بخشی از کل است یعنی بخش از مجامعه است بنافی اونام, اونام است و اگر در کنه ما مشخص هر سیاسات های پلورالسکی در نظر بگیریم برای افشار محرومتر توجه بهتر میشه و بری اونا پر های بیشتری داده میشه و بلاخره اونا با نقی این چنین سیاسات ها با نقی اما اقلیت هایی که محروم هستن بهتر عمل میکنن در 20 سال گذشته تا یک حدی به این مسائل توجهی بود مثلا برای زنان توجوه بیشتری دید. برای و مشارکتی زنان در تحصیل و بالاخره در کار مثلا کوچی ها اگر در نظر بگیریم افتالیت از جمعیه ما و شما که بیشتر محروم هستند مثلا از پشتت های تعلیمی و بالاخره سهمی اونا در دولت و بالاخره در پالیت های اقتصادی ایک هدی مثلا سهمی ما و شما داشتیم ولی بازا سریون هم احتراز داشتن مشکل جامعه افغانستان دیاز که ما و شما شکلی واقعی باور با فلورالیزم و هم دیگر نداریم عمیشه همه چیز بری خود میخواین مثلا دیگر هرچی قدر که تر میشن یا محرومتر شده میتونن ما و شما ونا را محرومتر میتنی ولی سیاست های بلاخره بنا همه ما و شما هستند. اگر ما در شما در گذشته بیشتر به مناطقی محرومتر سواجب میکردیم، امروز شاید ای وزیتی بدتر نخواد داشتیم. اونا تاثیر بیشتر, بیشتر دریاف میکرد و سهم بیشتر در قدرت و بلاخره در پالیت های اقتصادی و رازیتر میبودند. ولی در افغانستان همیشه مشکل است ما شما، یکی اصطلاح داریم نمی پرسیم دا چینی است که ارتناد پشتو است میگه میمزر ما طولی زمان میگه کلیش از ما هم مثلا بری دیگر چیزی سهمو و نبش و چیزی در نظر نمیگیریم بل دیگر ها رواد داری نداریم همه بری خود میخواییم جناب جانه صرف اگر به لحاظ پایداری اقتصادی یا صحبات اقتصادی نگاه به پولرالیزم داشته باشیم پلورالیزم اقتصادی یا تنوع اقتصادی که در افغانستان اگر در نظر بگیریم چگونه ما شما را به ایک پایداری اقتصادی میرستان اگر کمک میکنه که به اقتصاد پایدار و با سبات دست پیدا کنید بسید تنه به اون مثل قبلا اشاره شد وقتی نهادهای مختلف در فعالیت های اقتصادی شاریک مثل یکی مثلا همه یک اندازه دولت در خالیت های اقتصادی داخل باشن، نیحات های خصورسی شامل باشن، نیحات های غیر انتبای باشن، شرکت های کوچک باشن، شرکت های بزرگ باشن، و بلداخره افراد از همه اپشار باشن، سکتور های مستلیف اقتصادی پایلتر باشن، ما شما اقتصادی باسوبات تار افاد داشتیم، اگر اگر معزمی کلورالیسم اقتصادی دوری می جویم مثلا به طرف یک اقتصاد کاملا دولتی میریم که اون خودشون یک است و نخاره سم در همه جای جهان تجربه شده است اگر ما تمرکزی بیشتر سر یک سکتور داشته باشیم که ای خودشان به یک مشکلی یک فاجعه دیگر منجر میشن ما شما در اصطلاح علمی بریشان. مریزی مریضی هلندی یا داشت دیزی دیزیز که او استکتوری وقت تمرکزی همه وقت بیشتر بر اقتصادی در یک سکتور باشن یا اگر به اصطلاح دیگه به عبارت دیگه بگویم وقتی پلتفرم اقتصادی در یک سکتور متمرکز تر باشن اقتصاد بی‌ثبات است ما شما مثال از کشورای آفریقایی با و بالاخره پاپوگینه اندی و بازی کشورهای دیگه داریم که تمام تمرکزشان سر یک سکتور بودن مثل سکتوری ناتو معدن و چیزا بالاخره وقتی اموس قیمت‌ها نوسانات داشتند یا بالاخره تمام میشن و یا بازار تغییر میکنن یا تقاضا در ثانی بین المللی تغییر میکنن تمام اقتصاد یک کشور بی‌ثباتر میشوند در افغانستان این وقت مثلا بیشتر تمرکز معدن است و اگر موشما یک تغییری در بازار جهانی داشته باشیم یا یک مشکل دیگه پیش تمام اقتصادی موشما بناسانات رو برو می شود بالاخره وقتی اقتصاد یک کشور تمرکزشان بر سکتورهای مختلف باشن نیحاتهای مختلف شامل باشن طبقات مختلف قهال باشن, فعال باشن اقتصاد باسوباتر است. اگر ما مشکل در یک سیکسوری داشته باشیم، در یک نیخالی داشته باشیم، دیگران اونوز بهتر عمل میکنند و بالاخره ما شمای بناسان کلان و مشکلات بزرگتر مواجه نمی شوید. جنوب جانس سیبان که در موارس متعدد ما شما شاهد بودیم، در بحث زیست های اقتصادی افغانستان کمتر توجه شده است. از دیدگاه شما من حيث کارشناس اقتصادی یا من حيث استاد دانشگاه نقش پلورالیزم در توصیه زیر ساخت‌های اقتصادی افغانستان چی گونه بودามารถ می خب ای ده نیست که مثلا به بالاخره یک تولف تاتس مثلا یک مکتبی مشخص اقتصادی و برای همه یک رای حل مشخصی داشتن دارن. این این مسئله را باید از اول آدم در نظر بگیرن که فلورالیسم اقتصادی کدام مکتب اقتصادی نیست که یعنی کدام تیوری اقتصادی نیست که مثلا برای تمام مسائل اقتصادی راه‌حل دارن دارند ولی سیاست های میشه باید نحوی در سیاستگذاریهای عمومی اقتصادی در نظر گرفته شودی مثلا مو دیدگاهی عمومی کلورال باید در سیاستهای اومونیخ در نظر گرفته شود و در او تمرکز بر تنوع است یعنی ما وقتی از فلورالیسم صحبت میکنیم از تنوع صحبت میکنیم تنوع در سکتور تنوع در مثلا در فرهنگ و اقوام و بالاخره طبقات و همه چیز یعنی ماوسما تنوع تنو در هر بخش تنوع در صحبت میکنیم و وقتی موضوع تانو باشند زیرساختها همچنان هم مثلا خیلی تیوری های اقتصادی یا تیوریس های اقتصادی به زیرساختها بشتر توجه امیدن و, و دیدگاه اونا که زیرساختها مهم است موضوع ما باید سواجم و وقتی بید با خود بگیریم به این مانا است که ما یک اپروچ جامعتر و پلورالیستی در نظر داریم به نظری ما خب یعنی بعد در نظر داشته باشیم یعنی بلاخره برای زیر اگر ما او سما یک اپروچ جوامی و لورالیسکی داشته باشیم با زیر ساختا توجه شود و در مورد زیر ساختا باز بحث اقتصادی مشخص تری هست مثلا ما شما کاسی پیتنالیسیش می میکنیم یعنی تاوان و مطارش می و بلاخره ببینیم چقدر موپید است این رقمیم نیست که موشم آتمامی بودی جای خود را بر زیر سخنه مختص کنیم و فکر مایی باشه که بلاخره این نتیجه میتن با همه چیز باید توجه شون و سنجیده شون کدام چیز هم منفعتش بیشتر است و بلاخره کمیشان بالاتر است مثلا این روزا اگر ما ببینیم توجه بیشتر به زیر ساختای کلان است و همه فکر می که با ساختن یک بند آب تمام مشکلات جامعه ما حل می در حالی که اگر دقیقم سنجش شد و هر چقدر پروژه بزرگی زیر ساختی ما در مورد یا بیاری و یا در نظر بگیریم از دو سی پیسر بالاتر نقش در جلیفی ما ندارند در حالی که ما با یک مسئله بزرگتری از مثل یکیشن زنان ام ایش نداریم در حالی که نقشه او بسیار بالاتر از این است مثلا اگر ما شما ارقام اگست ارقامی که سال 2022 در تاریخ 14 اگست از طرف یونیسیپ نشر شد آنها اشاره داشتند که فقط ام که از لیسه از دوره‌ی متوسطه و لیسی از تحصیلات, در تحصیلات سانویه محروم شده استن نقش اونا و پرتسپیشن اونا در اینده تا پنج میلیارد اونا استمید کده بود یا تخمین کده بود یعنی اگر دخترا و زنانی که در این دوره مشخص از تحصیل محروم شده است اگر محروم نمی شدن نقش اونا و کار و اقتصادی اونا به اندازه پنج میلیارد به اقتصال افغانستان در آینده کمک میکرد. اگر ما شما بعد از تحریم های بیشتری احمدن تمام نقشی زنان در نظر بگیریم و با احساس اونا تحلیل کنیم شاید بالاتر از دن میلیارد دلار باشه. خب کدام بندی آب دن میلیارد دلار به اقتصال افغانستان مفاد میرسند کدام مثلا کانال کدام طرف زیر ساختو اله چیز یعنی ما و شما باید یک سنجشی داشته باشیم چه چی چیزا به اقتصاد مهمتر و مفیدتر است و در کنار این که مثلا ما و شما سنجشی ماده داریم یک یک دیدگاه اخلاقی داشته باشیم یک دیدگاه حقوقی داشته باشیم اگر سرمایه گذاری در بخش تعلیم و تحصیل زنان حتمی پاد کمترم داشته باشند چون اینا حق اونا هستند و از اخلاقی مهمتر از ساخت یک زیر ساخت است به ما از امی فاطر مسائل دیگه هم باید در نظر گرفته شود و وقتی ما ما از این همه چیزا صحبت میکنیم و این همه دگاه ها را در نظر میگیریم میخوریشان یک اپروچ فلورالیستی هست شکر نونام جانسیب بینوان آخرین سوال با تعجب از سیاستگزاری های که داره کشور مثل افغانستان انجام میشه در راستای رشت و اقتصادی اگر ما بخوایم که سرمایه خارجی را به افغانستان بکشانیم و اونا را تشویق کنیم که به افغانستان سرمایه گزاری کنیم با توجه و دیدگاه پلورالیستی و پلورالیزم چی مسیر را دنبال کنیم که تا بیشتر سرمایه خارجی را به افغانستان جذب کرده بکنیم سوال خوبی مطرح کردن تمام کشورایی که توانستن سمای بزرداری های بیرونی را به خود جلب و جلس کنن دیدگاه اونا باز بودن یعنی اونا یک افروچ باز داشتن اونا مثلا اما آم دیدگاه محدود و رسترکت شده را کنار گذاشتن اونا مثلا در قدم اول حضر باید بودن که سخمی سکتوری خصوصی باید بالاتر و بیشتر باشن و بالاخره رگولیشن دولتی کمتر باشن و دولت کمتر مداخل کنن و احقام سیاستی با باسوباتی داشتن سیاست های باسوبات و اقتصاد باسوبات و بالاخره قوانین آزاد که در محدودیت های دولتی کمتر باشن مالیات کمتر باشن و بلاخره رجیسریشن یک شرکت و مسائل بعدی با شون پرسها و مراحل بعدی شون آسانتر و شفافتر باشن ای بنابه بشکل بشکله اتومات کمک میکنن که سرمایه‌گذاریهای بیشتر جلب انجام و بنظر من این یک در اپروچ در یک فلورال سیستم ما شما میشوید برای همین مساله توجهی داشته باشیم وقتی ما شما میگیم که بعضیگران اقتصادی باید متنوی باشند شرکت های داخلی و بیرونی و بالاخره انواع مختلفی شرکت های شرکت های تصدیری های دولتی وقتی این همه خواست دیپلورالیزم باشند بالاخره در سیاست ها ما شما توانیم بری اونا یک برنامه ریزی کنیم چطور بیتوانیم بری سرماهی بزاری های بین المدلی زمینه کنیم و برای مستاید کردن زمینه نیاز به یک تعداد اصلاحات است که اصلاحات میشه در شکل قوانین باشد یا حتی برداشت قوانین و برداشت محدودیتها و آماده سازی ام فکری و ذهنی برای سرمایه گذاری بین المللی. اکثریت دولت‌های توالی تر و بالاخره خودکامه بیشتر توجه و تمرکز بر خود دارن و هر پس خودکپایی می میزنند در حالی که خودکپایی به نوع خود امون هایی که برای خودکپایی در نظر گرفته شود بیشتر به یک غربت و ققر منجر می چون اونا در مورد تجارت بین المللی به اندازه باز باز که باز بازن بعض نیستن به ها یک فوج کلورالیستی و بالاخره داخیره سیست های بازو از بازار بازو تجاربی از کشورهایی که توانستن سرمایه بین باین را جلب کشور خود کنند تومک میکنند که بلاخره توانیم خودی سرمایه بین باین ملاله را جذب کنیم این کشورهای مثل افغانستان شکر جناب جوانیستایی با صحبتهای همه جانبه و ارزشمند شما در برنامه و افغانستان ممنون از یک فرصت کذاشته این مدار برنامه حاضر شدیم انشاءالله که شنوانده ها و بینیمده های برنامه کسرتگره و افغانستان از اندیشه ها و درسته ما بیشتر وسته پیشوند. <متحسن> همراهانی گرامی <متحسن> سلامت باشین. همراهانی گرامی ما در اینجا در برنامه کسرتگره و افغانستان با کسرت نگاه ها و دیدگاه ها باورمندیم و به هست آزادی بیان متحد هستیم و دیدگاه ها را بدون سانسور به نشر میسپاریم. تا در راستای های توسط اقتصادی افغانستان و رسیدن به افغانستان سلحامیز و مرفع گام های و اساسی را به لحاظ اکادیمیک بردارید. تا دیدار دیگر شما را به خدا هنده متعال نسوارم. برنامه از طرف مؤسسی مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسس رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشت کردید